ایه خواهرم آنجاست سلام مریم خوبی سلام سلام مریم خانوم من محمد هستم سلام از آشناییتان خوشوختم حالتان خوب است ممنون من هم از آشناییتان خوشوختم کی آمدی خیلی منتظر ماندی نه پنج دقیقه قبل رسیدم. نهار خوردی؟ نه نخوردم. شما چطور؟ نهار خوردید؟ نه ما هم نهار نخوردیم. الان به رستوران می رویم. تو هم بیا. رستوران خیلی دور است. با تاکسی می رویم؟ نه خیلی دور نیست. پیاده می رویم. راستی این پاکت چیست؟ یک هدیه است. برای دوستم خریدم. آن را به شیراز میفرستم پس بعد از نهار با هم به اداره پست می روید.